مصبه سفو کارهای چندی کارهای مربوط به زندگی دنیاوی و ادبی، قهرمان میل سفر کرده ما را هنوز تا دو هفتهی پس از آن گردش در مونیخ نگه داشت بالاخره پیغام فرستاد خانه روستاییش را ظرف چهار هفته برای اقامتش آماده کنند و یک روز روزی میان نیمه و آخر ماهمه با قطار شبانه به سوی تریست روانه شد که تنها 24 و چهار ساعت آنجا توقف کرد و صبح روز بعد با کشتی راهی پولا شد آنچه او در پیش بود احساس بی پیوندی در سرزمین بیگانه بود و این چیزی بود که می توانست فوراً در دست رس باشد پس در جزیرهای در دریا آدریاتیک که سالها پیش شهرتی به هم زده بود نه چندان دور از ساحل استریا با مردمی رنگین و پار که به لحجه غریب و بیگانه سخن می گفتند و تخت های زیبایی که در برابر امواج قد برافراشته بودند، اقامت گذید. منتها باران و هوای گرفته دنیای محدود گروه یک پارچه اتریشی میهمانان هتل و نیز عدم رابطهی درونی با دریا، رابطهای پر از صفا و آرامش که تنها ساحلی شنی با هوای لطیف امکان پذیر می سازد. مانع این احساس بود که به مکان دلخواه رسیده است کششی در درونش که خود به درستی نمیدانست به کدام سو پریشان خاطرش می کرد به برنامه کشتی ها نظر میانداخت به دنبال گم کرده ای به وبر خود می نگریست و ناگاه به گونه ای نامنتظر و در عین حال بدیهی مقصد را پیش رو مجسم یاد. اگر انسان میخواست شبانه راهی شهری بیمانند نامأمول و افسانهای ای شود به کدام دیار سفر می کرد. اینکه معلوم بود او اینجا چه میکرد؟ به غلط آمده بود مقصد او آنجا بود پس دیگر در پایان دادن به این اقامت نادرست درنگ نکرد. یک هفته و نیم پس از ورود به جزیره قایق موتوری سری و سیری در صوبگاهی مهالود به بارش از میان دریا به بندر نظامی بازگرداندش و او تنها به این منظور به خشکی رفت که از پل چوبی بر عرشه کشتی قدم گذارد که برای سفر به ونیز بخار موتورش را به هوا می فرستاد این کشتی قدیمی بود متعلق به کشور ایتالیا. کهنه دود گرفته و قمالود. در اتاقک قارمانندی در قسمت اندرونی کشتی که با نور چراغی روشن میشد و ملوانی گوش پشت و کسیف با پوزخندی به احترام آشنباخ را به آنجا رهنمون شد. مردی با ریش بازی و تحسیگار برگی در گوشه لب. بشت میزی نشسته کلاهش را یکوری در پیشانی فرو کرده بود. مردی با سر و ریخت از مدفتاده مدیر سیرکی که با ای که میخواست کاسب کارانه جلوه کند نام و نشان مسافران را میپرسید و بلیت برایشان صادر میکرد. با گفتن ونیز درخواست آشنباخ را تکرار کرده دست دراز کرد و قلمش را در تهمانده قلیز محتوی دواتی که کج گذاشته بود زد. درجه یک و نیز بفرماید آقای محترم و با خط درشت و خرچنگ قرباقه چیزی نوشت. از قوطی شنهای آبی رنگی نوشتهاش پاشید پس آنها را در جام گلینی فرو ریخت کاغذ را با انگشتان زرد و استخانی تا کرد و باز مشغول نوشتن شد. ضمن این کارها وراجی هم می کرد. به سلامتی مقصد خوبی برای خودتان در نظر گرفته اید. ونیز چه شهر زیبایی و چه جازبهی که بر اشخاص تحصیل کرده دارد. هم جاذبه زیبایی های گذشته هم جاذبه زیبایی های کنونیش. جاذبه بیچون و چرا؟ سرعت حرکات فرزش با حرفهای پوچی که آن را همراهی می کرد تأثیری سکراور و منحرف کننده داشت گفتی نگران آن است که مبادا مسافر در تصمیمش به سفر ونیز سوست شود شتابان پول را گرفت و با تردستی مخصوص وردست های قمارخانه ها باقیش را روی رومیزی لکدار انداخت با تعظیمی هنر پیشوار اقامت خوشی برای او آرزو کرد و گفت هم همسفری شما باعث افتخار ماست آقای محترم و همانطور که دستش را بالا برده بود ادامه داد آقایان محترم گفتی کاروبارش حسابی رو به راه است در حالی که کس دیگری خواهان سفر به ونیز نبود، آشنباخ به ارشه بازگشت. با دستی به جان پناه تکیه داده، در بهر جماعت بیکار که در اسکله به تماشای راهندازی کشتی جمع شده و مسافران که بر ارشه ایستاده بودند، رفته بود. مسافران درجه دو زن و مرد، جلو ارشه بر صندوق و بخچه سفرشان نشسته بودند گروهی جوان مسافر ارشی نخستین بودند ظاهراً شاگرد پیش اهل پولزین که از روی هوسی ناگهانی بر سفر ایتالیا توافق کرده بودند از خود و کاری که به آن دست زده بودند جنجالی به راه انداخته بودند که نگو میگفتند و می خندید. از بازیزی های خود خودپسندانه لذت می بردند و به طرف رفقایشان که با کیف پولی در دست در خیابان بندرگاه در پی داد و ستدهایی بودند و با چوب دستی های کوچکی این خوشگذران را تهدید میکردند به زبان خود متلک میپاندند. یکی بود که در لباس تابستانی به رنگ زرد روشن، و با کراواتی سرخ و کلاه مکزیکی گل و بر سر با صدای جیخ کشان در شوخی و مسخرگی از همه پیشی گرفته بود. ولی آشنباخ هنوز او را چندان زیر نظر نگرفته بود که یک خورده دریافت که این جوان قلابی است. او پیر بود. امکان نداشت اشتباه کند. دور چشم و دهانش پر از چین و چروک بود سرخی بیرنگ گونههایش بزک بود موی قهوه‌ای زیر کلاه حسیری نوار رنگین خورده مصنوعی بود گردنش پوست و استخانی در همچروکیده بود سبیل سربالا و ریش مسلسی بالای چانش رنگ بود و بس و دندانهای زرد و بی و که به هر خنده بیرون میانداخت آریه بود و دستهایش با های سبابه انگشتر و نگین خورده دستهای پیرمردی بیش نبود آشنباخ با خاطری وحشت زده در بهر حرکات او و رابطهش با دوستانش رفته بود این جوانها نمیدانستند. متوجه نبودند که او پیر است که او به ناحق این گونه ناشیانه لباس رنگین شاگسته آنها ها را تنگ کرده و فقط ادای جوانها را در میآورد. آنها به گونه بدیهی و عادی حضور او را در میان خود تحمل میکردند و چنان که به نظر میآمد هیچ خلاف عادتی در آن نمیدیدند. او را از خود به حساب میآوردند. از ضربه شوخیوارش به پهلویشان ابراز انزجار نکرده آن را بی پاسخ نمی گذاشتند این چگونه ممکن بود؟ آشنباخ دستی بر پیشانی گذاشت و چشمانش را بست چشمانش که داغ بودند آخر کم خوابیده بود چون ابروها را در هم کشید و بار دیگر به اطراف خود نگریست چون این به نظرش آمد که هیچ چیز جریان عادی خود را ندارد دنیا شکل غریبی به خود میگیرد که شاید لازم باشد جلوش گرفته شود در این لحظه این احساس به او دست داد که گفتی بر امواج شناور شده و چون با وحشتی نابجا سربلند کرد متوجه شد هیکل سنگین و سیاه منظر کشتی به کندی از دیواره کنار دریا جدا شود. نوار آب برراغ و کسیف میان اسکل کشتی و کشتی وجب وجب و جب با تکانهای کشتی به جلو و عقب تر شد و کشتی بخاری پس از تکانهایی که به جسته قول آسایش داد با تومع نوک نک پوزش را به طرف افق گشاده دریا گرداند آشنباخ به طرف اتاق ناخدا به راه افتاد که خدمتگار گوش پشت کنارش برای او صندلی راحتی زده بود و میهمانداری با لباس مخصوص لک شده ای اوامرش جویا شد. آسمان خاکستری بود و باد مرتوبی میوزید. بندر و جزایر عقب مانده بودند و هرچه بر ساحل و خشکی بود به زودی در افق مهالود محو شد. گلوله‌های ریز دود زغال در هوا پخته شده بر عرشه که آب پاشی شده بود و خشک نمیشد فرو میریخت. ساعتی که گذشت چادری برپا کردند چون باران شروع شده بود مسافر ما پالتویی دور خود انداخته با کتابی بر پاهایش غرق در استراحت شد و زمان در نهان گذشت باران تمام شده بود و سقف پارشعی را بر افق باز شده بود زیر گنبد تیره آسمان دریا خلع دهشتنگیزش را گسترده بود ولی حس انسان در فضای تهی، در فضای یکسان و بی انتها اندازه زمان را از دست می دهد. پس او در فضایی بیسنجش و در حالتی رؤیایی قوته میخورد عجیب و شبهگون، دلغک پیر و مرد ریش درون کشتی، با قیافه های نامشخص و با کلماتی رؤیایی روح او را در می‌نوردیدند و او به خواب. هنگام ظهر او را برای سرف نهار به سالن غذاخوری راه رومانندی پایین بردند که در اتاقک خواب با آنجا باز میشد و در انتهای میزی که او در سر دیگرش خوراکش را خورد شاگرد پیش ورها همچنین پیرمرد از ساعت ده با ناخدای سرخوش به باد نوشی مشغول بودند غذای مختصری بیش نبود و او به سرعت آن را تمام کرد میلش به هوای آزاد بود میخواست آسمان را ببیند و ببیند که آیا نمیخواهد بر فراز و نیز باز شود؟ جز اینکه که این شود تصور دیگری به سرش راه نیافته بود چون این شهر همیشه او را با درخشش آفتاب پذیرا شده بود ولی آسمان و دریا تیرگی سربی رنگ را حفظ کردند. گهگاه بارانی مهالود فرو میبارید و او رفته رفته به این فکر خو گرفت که از راه آبی به ونیز دیگری وارد خواهد شد. جز آنکه بارها از طریق خشکی به دیدارش رفته بود. کنار میله جلوی کشتی ایستاده نگاهش را در پی ساحل به دوردست دوخته بود به یاد شاعر احساساتی و پراندوهی افتاده بود که در گذشته گنبدها و ناقوس‌های رؤیایش از این امواج سر برآورده بودند در آن خلوت چند بیت از شعری را که در آن زمان در حالتی سرشار از احترام سعادت و غم پدید آمده بود پیش خود تکرار کرد و تحت تاثیر عواطفی که به این راحتی در شکل هنری در اختیارش قرار گرفته بود به دل خسته و ناشاد خود نگریست با این پرسش که آیا احساسی تازه احساسی پریشانیزا شاید احساس پیران سرماجرایی باشد که این مسافر گریخت از شهر و دیار را در پیش ناگاه در سمت راست ساحل هموار پدیدار شد. قایقهای ماهیگیری بر منظر درگاری ریختند جزیره ساحلی از پشت افق بیرون آمد. کشتی از سمت راست آن رد شد. سرعت خود را کم کرده، وارد بندرگاهی که نام جزیره را بر خود دارد شد و در لاگونا در برابر منازل محقر و رنگارنگ محلی به انتظار زورق خدمات پزشکی ایستاد ساعتی گذشت تا زورق آمد هم به مقصد رسیده بودند و هم نرسیده بودند عجلهای نداشتند و در عین حال احساس بیتابی میکردند جوانان پلزیایی که احتمالا احساسات وطنپرستانهشان نیز از نوای نظامی شیپورها که از باغهای عمومی بر فراز دریا تنی نفکنده بود، برانگیخته شده بود، بر عرش آمده سرمست از آستی، برای برسالیری که آنجا تمرین می زنده زندباد سر میدادند و تماشای پیرمرد و تشبساتش برای همراهی با جوانان مشمعز کننده بود. او که در این سر پیری در برابر تأثیر شراب فاقد پایداری جوانان بود، چنان مست شده بود که دیدنش دردآور بود. با نگاهی که بلاحت از آن میبارید و با سیگاری میان انگشتان لرزان، در حالی که نیروی مستی به جلو و عقب میکشیدش، برای حفظ تعادل تلاش میکرد و به این طرف آن طرف تاب می‌خورد از آنجا که به هر قدم امکان افتادنش بود جرأت نمی‌کرد قدمی به پیش گذارد و با این همه گستاخی را به حد چندشاوری رسانده بود هر که نزدیکش میشد، دکمه کتش را می چسبید به زبان الکن چیزی میگفت. چشمک میزد و ریسه می‌ر انگشت پرچین و چروکش را با انگشتری که بر آن بود به شیطنت احمقانهای بلند میکرد و نوک زبانش را به گونه مشمعز کننده و پركنایهای به اطراف دهانش میمالید آشنباخ با ابروان درهم کشیده به او نگاه میکرد و دوباره حالی گرفته به او دست داد گفتی دنیا گرایشی خفیف و در عین حال ممانعت ناپذیر دارد که چهرهی غریب و مترسگوار از خود نشان دهد احساسی که البته و احوال اجازه نمی‌داد در حفظش چندان پا فشاری کند چون حال دیگر موتور کشتی بار دیگر بنای تپیدن گذاشت و کشتی که حرکت خود را در چند قدمی مقصد متوقف کرده بود حال بار دیگر آن را از طریق کانال سن مارکو از سر گرفت. و بدین سان بار دیگر دیدش این عجیب ترین بارنداز را، این ترکیب خیره کننده بناهای خیالانگیز را که این جمهوری در برابر دیدگان دریانوردان از راه دور آمده میگسترد شکوه ملایم کاخ، و پل آه کشان ستونهای ساحلی با مجسمه شیر و قدیسین نمای پیشین معبد افثانهی با دور دروازه و ساعت قول پیکر و همچنان که نگاه میکرد در این فکر بود که وارد شدن به ونیز از طریق ایستگاه راه آهن بدان میماند که بخواهند از در عقب وارد کاخی شوند و جز آن که همچنان او با کشتی و از راه دریای عظیم به این شهر افثانه ای این افثانه ای ترین شهر وارد شوند کار دیگری نشاید